يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميّت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وکل محدثه بدعه وکل بدعه ضلاله وکل ضلاله في النار، ثم اما بعد در آغاز و بدایت سال تحصیلی هستیم شایسته و مناسب میدونم که مسائلی را در رابطه با علم و دانش اهمیت و جایگاه علم و دانش در دین اسلام و نکات و توصیه‌هایی پیرامون همین مسائل خدمت شما نمازگزاران محترم ارز نمایم گرچه در رابطه با اهمیت، مکانت و جایگاه علم و دانش بسیار سخن گفته شده و بسیار هم شنیدید اما برای فتح باب و عنوان مقدمه خیلی خلاصوار آیاتی در رابطه با اهمیت و ضرورت علم و دانش به سم شما خواهم رساند و خدمت شما عرض خواهم نمود و بعد نکاتی پیرامون همین مسائل تعلیم و آموزش میدانیم که علم و دانش در اسلام آنقدر اهمیت دارد که اولین آیاتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد بحث تعلیم بحث آموزش و علم و دانش است بحث اقرا و خواندن و مطالعه کردن است پنج آیه اولیه‌ای که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد پنج آیه اول سوره علق می باشد فرمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ بسم ربك الذي خلق بخان با دستور بقراءة كردن ومطالع كردن خاندن اولین ارتباط آسمان با زمین اولین آیه‌ای که بر رسول الله صلی و وسلم نازل می شود محتواش همین هست و بعد بحث خلقت در کنار علم بحث خلقت می کند و آفرینش انسان چرا که پروسه خلقت و آفرینش بایستی باید با علم و آموزش همراه باشد انسان از وقتی که به دنیا می آید خلق شده اصلا و پا به زمین گذاشته بایستی حتما با علم و دانش همراه باشد. باید یاد بگیرد و با یاد گرفتن مجهولات در زندگی خود را تبدیل به معلومات بکند. اقرأ و ربک الکرم الذی علم بالقلم اقر بسم ربک الذی خلق خلقه و علمه در کنار هم مقرون هم دیگر آمده است. پس بایستی چیزی باشد ارتباط بین آفرینش انسان و بین علم و دانش و یاد گرفتن هر انسانی که خلق می شود بایستی دنبال تعلیم باشد پا به عرصه وجود و هستی می گذارد بایستی بیاموزد و یاد بدهد این در سوره اقرأ. و این یکی از مفاخر دین می باشد که می بهش فخر کرد که دین ما دین علم و دانش هست نسل آینده ما محصلین دانش آموزان دانجویان هستند که پا در راه فراگیری علم و دانش گذاشتند و اگر جامعه ای بخواهد به سمت پیشرفت، رشد و ترقی حرکت بکند چاره ای ندارد جز اینکه بر روی جوانان خود کار بکند با اعتماد بر الله و اعتماد و تکیه بر جوانان امت پیشرفت می کند اما جوانانی که هم غمشان علم و دانش و یاد گرفتن باشد در سوره الرحمن الله سبحانه و تعالی فرمود الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان باز بحث خلقت و علم هست الرحمن علم القرآن قرآن را یاد داد خلق الانسان انسان را آفرید علمه البیان بیان و سخنوری را به انسان آموخت و یاد داد قدر اهمیت دارد علم و دانش که با خلقت انسان عجین شده است و جدا ناپذیر است پس اراده الله بر این است که انسان باید یاد بگیرد دنبال معلومات باشد دنبال علم و دانش باشد این رو الله سبحانه وتعالی از مخلوقاتش که انسان باشد میخواهد در سوره بقره باز به همین صورت. خ... خلقت و علم و دانش در کنار هم اوایل سوره بقره میفرماید و اذ قال ربک للملائکتی اني جاعل في الارض خلیفه من قرار دهنده جایگزینی در روی زمین هستم یعنی میخوام انسان را در زمین قرار بدهم در آیه بعد فرمود و علم آدم الأسماء كلها و علم آدم تعلیم داد و آموزش داد به آدم خلقت و بعد سریعاً آموزش داد بس این پروسه پروسه خلقت با علم همراه است. و عرض کردم از آیات اولیه‌ای که بر رسول الله صلی و وسلم نازل شده همین هست بحث علم و دانش هست و این ما می توانیم جهانیان سرمان رو بالا بگیریم و به رخ اونها بکشیم حتی که اسلام اولین آیاتش اولین آموزه‌ها و تعالیم دین ما بحث علم و دانش است بحث یاد گرفتن است بحث آموختن است بحث اهمیت دادن به علم و دانش است و دا اسلام دین خرافه نیست دین جهل نیست خرافه پرستی نیست آیات و یا سوره های اولیه‌ای که بر رسول الله صلی الله و نازل شده سوره اقره هست، سوره مدثر است سوره مزمل است و سوره قلم در سوره قلم باز می‌بینیم الله سبحانه و اولین قسم خود را آغاز می‌کند الله سبحانه و در قرآن کلام الله مجید قسم های زیادی خورده و بسیاری از سوره ها را با قسم آغاز کرده اما الله سبحانه وتعالی ترجیح داده که اولین قسمش قسم به قلم باشد و نه چیز دیگر و فرمود بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم و ما یستورون این اولین قسم قرآن هست قسم به قلم و آنچه که با آن می نویسند چرا به چیز دیگر قسم نخورد چرا اولین قسم خود را با قلم شروع کرد اینا است که هر ذهن پرسشگر و خلاقی باید بپرسد از خود نون والقلم و ما یسترون قلم و آنچه که با آن می نویسند چرا؟ چون که بدون نوشتن و قلم آموزش نمی شود انجام شود، و انجام بپذیرد چون که اسلام بحث مهمترین بحثش بحث علم و دانش است لذا اسلام آموزه های دینی از آموزش از علم و دانش حراسی ندارد بلکه به آن تشویق و ترغیب هم می‌کند قواعد و دستورات اسلام چه از عقایدش و چه از عبادات و اخلاقش و مکارم اخلاقش و آدابش و همه آموزه‌های دینی با علم دقیق و علم درست و عقل سلیم هیچ گونه تضادی ندارد بلکه در راستای علم هست اما ممکن است بشریت هنوز آن فوائدی که اسلام به آن دستور داده را کشف نکرده باشد، مسائل علمی آن را نرسیده باشد به آن. اما اما اهمیت و جایگاه علم و دانش بسیار شاد گفته شده و بسیار شنیدید. هم از قرآن، هم از سنت و قر را علم علما. الله سبحانه و تعالی پیامبرش را دستور میدهد که دنبال ازدیاد و افزایش علم هم باشد بسنده نکند اون دانش آموز و اون دانشجویی که خود را فارغ و تحصیل می فکر نکند که دیگر وقت یاد گرفتن تمام شده اون مرد که سال فکر نکند که من پایم گور است دیگر چه نیازی دارم به آموزش هاشا و کلا این گونه نیست بلکه همانطور که عرض کردم وقتی خلقت را و آفرینش را و حیات را الله سبحانه و تعالی مقرون تعلیم و آموزش قرار داد ما اینو میفهمیم که و این را برداشت میکنیم که علم و دانش زمان نمیشناسد و هیچ حالتی را نمیشناسد در هر حالت و در هر سن انسان باید آموزش داشت ببیند و یاد بگیرد و مطالعه بکند گرچه اسمش محصل نباشد دانش آموز نباشد دانشجو نباشد ولی او باید دانش پجو باشد او باید دانش را یاد بگیرد در هر سنی که هست و در هر حالی که هست متأسفانه بسیارند تو این جامعه حالا از دانش آموزان کسانی که سر کلاس درس مینشینند شده به ما گفتند که ما حالا درس برای چی بخونیم من پدرم پولدار هست و شغلم هم تضمین هست چندین پروژه کاری و شغلی داریم مثلا هر کاری بخواد برام فراهمه من میخوام این دیپلمه رو بگیرم دیگه نمیخوام بره دانشگاه بشم که این افکار بیمار متاسفانه در جامعه در حال انتشار هست نمیفهمند که علم و دانش برای چی از فکر میکنند که قرار است برای چند سبایی در دانشگاه درس بخواند تا سری بگوین بیا پشت میز بنشین و این کار کارمندی حقوق بگیر برو سر کارت این نیست یکی از نتایج درس خواندن، خب خدمت کردن یا پذیرفتن یک شغل به عنوان خدمت به عنوان درامدی برای امرار معاش هست یکی از اونهاست اما همشکی این نیست جایگاه علم و دانش و یاد گرفتن بسیار بالاتر از این حرف هاست جایگاه خیلی والایی دارد اگر همه افراد جامعه به سهم خود هرکس علم را فرا بگیرد و هرکس در تخصص خود و خود به جامعه خدمت بکند جامعه بسیار آبادی خواهیم داشت و روبه رشدی خواهیم داشت هرکس در تخصص خود متخصصیم از علم و دانش که افراد متعهیدی هم باشند اینجاست که میدانیم که در کنار علم و دانش به یک چیزی دیگری هم نیاز داریم به یک چیز خیلی مهم دیگر باید در کنار علم و دانش نیاز داشته باشیم و اون چیز دیگر چیست شاید جامعه ما مغفول مانده از آن و چیز مغفول شده ای هست چند چیز دیگر چند ابزار دیگر چند امکانات و ابزار دیگری که برای رشد جامعه در کنار علم و دانش نیاز هست حالا زیاد گفته شده اول سال یا هر وقت دیگر که با علم و دانش است که جامعه رو به رشد حرکت میکنه جامعه پیشرفته‌ای خواهیم داشت اما همش این نیست و اولین آیاتی که بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شده هم فقط علم و دانش نیست در کنار علم و دانش چند چیز دیگری هم هست که نباید از اون غافل بمانیم. یکیش اخلاق هست یکی اخلاق هست جز اولین آیاتی هست که نازل شده بعد از علم دانش البته اما جز اولین سوره ها هست چهار تا سوره جز اولین سوره ها بعد از اقره سوره دیگر هست سوره مزمل و مدثر و سوره قلم در سوره قلم, قلم الله صلی اللہ تعالی فرمود نون والقلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربکم مجنون و لك لکل اجرا غیر ممنون و انکل علا خلوق عظیم جواب قسم در سوره قلم این هست الله سبحانه و به قسم به قلم قسم یاد کند به قلم قسم می ارزش علم و دانش را به ما گوشزد میکند اما در ادامه فرمود و این نکل علی خلق نظیم و تو بر خلق خوی بس بزرگ هستی یعنی بحث اخلاق اولین صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو خلق خوی بس بزرگ معرفی میکند لذا برای نتیجه بخش بودن و مفید بودن علم و دانش نیاز به اخلاق هست نیاز به متعهد بودن هست که افرادی که علم می آموزند و علم یاد می گیرند اخلاق هم داشته باشند با اخلاق باشند مکارم من مبعوث شدن تا مکارم اخلاق را کامل کنم هدف از رسالت خود را و هدف از پیغمبری خود را این معرفی میکند که من مبعوث شدم فقط که مکارم و صالح اخلاق را به اتمام رسانم و کامل بکنم با باعث و لعتمم مکارم الاخلاق یا باعث و مصالح الاخلاق در روایت دیگر یعنی هدف از پیغمبری مبعوث شدن به اتمام رساندن و کامل کردن اخلاق هست اون حلقه مفقوده و گم شده بشریت امروز اخلاق است. اون اتش بشریت امروز اخلاق از اخلاق را گم کرده. بشریت امروز به دنبال کشف کردن مجهولات در فضا هست و ادعای رفتن به کره ماه را دارد. و از لحاظ علم دنیاوی چیزی کم ندارد تقریبا اما آن چیزی که اروپا، آن چیزی که حالا دانشمندان، آن چیزی که بشریت امروز با آن همه سرصدا قبقبه و دبدبهش کم دارد اخلاق است. حتی در بین مسلمان ها، متاسفانه، مسلمانان نمازخان کم نداریم اما مسلمانان با اخلاق کم داریم. بسیارا مسلمانانی که بد اخلاق و بی اخلاق بد اخلاقی یعنی تندی نه فقط این نیست ما وقتی سخن از اخلاق و خوش اخلاقی بحث می شود فکر می کنم که هر کس همیشه میخندد خندد اون خوش اخلاق هست. این نیست فقط خلاصه نکنیم چیز دیگری هست از مسلمانانی که پشت نماز خود پنهان می شوند و فضای امنی در پشت نماز خود ایجاد می کنند و با آن بعد میروند کلاهبرداری میکنند می کنند خیانت می کنند بد قولی می کنند. بعد حسابی میکنن و خیلی از مسائلی دیگر دارند. بعد افراد میگم خب این صفحه اول مسجد پنج وقت حاضرت نماز میخوانند ما بیاش اعتماد کردن رو این حساب. بعد اومد پول ما را بالا کشید. بعد اومد فلان کار کرد و بهمان کار کرد. این بسیار خطرناک است. ظاهر دین را دارند. شد حالا ریش هم داشته باشه. نماز هم بخونه و خیلی کارا. حجابم را رایت کرده باشه خانوادش. اما تو مس اخلاقی، تم مسائل مبادئ اسلام، تو مسائل خیلی کلان و مهم اسلام که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اصلا من به خاطر اون مبوض شدم و اگر نمازی هم هست قراره که اخلاق ما را اصلاح بکند اونجا پایش میلنگد. اونجا کم میآورد. در دروغ‌گویی صداقت ندارد. خیلی مهم هست حتی رسول الله صلی الله علیه و سوال کرد سوال اول یسر قل از رقلمام من ممکن دزدی بکنی؟ آیا ممکن زنا بکن؟ آیا ممکن فلان کار هم انجام داد؟ بله. اوه یا که بل ممکن است دروغ هم بگویاد؟ قاله لا. هرگز مام دروغ نمیگوید. با دروغ نگفتن نش مانع از این که کارهای دیگر هم. و اگر دروغ بگوید دست به هر کاری دیگر میزند. نوشتم سوال مهمی برای من. ما من شیء اثقل فی من حسن الخلق شما میدانید که رسول الله صلی اللہ وسلم سنگینترین چیز در ترازوی اعمال رو روز قیامت چه معرفی میکند؟ نماز حجت؟ روزه دوشنبه و پنجشنبه، حج نه فرمود هیچ چیز روز قیامت در ترازوی اعمال سنگینتر از حسن خلق نیست رعایت کردن مسائل اخلاقی نیست بالاترین چیز هست خبر بدهم به شما از اون کسی که نزد من محبوبتر است و در روز قیامت در مجلس من به همه نزد... نسبت به, همه به من نزدیکتر است از همه به من نزدیکتر است روز قیامت محبوب من هست خبر بدهم چه کسی هست ساکت شدن همه رسول الله صلی الله علیه وسلم دو بار یا سه بار این سال را دوباره تکرار کرد خبر بدهم کسی که محبوب ترین فر نزد من است و نزدیک کس به من چه کسی هست؟ گفتم بله فرمود احسنکن خلقا کسی که بهترین اخلاق را داشته باشد. کسی که اخلاق یعنی دروغ نگفتن اخلاق یعنی وقت شناسی اخلاق یعنی وفای به عهد اخلاق یعنی خوش کردن اخلاق یعنی تواضع داشتن اخلاق یعنی نفرت و کینه و حسادت نداشتن اینا اخلاق است اینا ما یک ای پیشرفت جامعه در کنار علم و دانش می شود وگرنه اگر کسی مسلح به صلاح علم و دانش باشد اما از ایمان و تعهد و اخلاق برخوردار نباشد ممکن است جامعه را نابود بکند نابود بکند بشریت با علم و دانش بمب را کشف کرده بمب‌های شیمیایی بمب‌های اتمی اگر تعهد و اخلاق نداشته باشد این ماده خطرناک در دست یک انسانی که اخلاق ندارد چی میشود؟ پس علم و دانش جایگاه بس بالایی دارد همه هم شنیدیم آیات و احادیث در رابطه با اهمیت و ضرورت علم و دانش هم شنیدیم اما بدانیم که در کنار علم و دانش ما نیاز به اخلاق داریم خلق و خوی خوب داریم مسائل اخلاقی رو هم باید روش کار بکنیم از رذایل اخلاقی به دور باشیم. اینجا بحث اهمیت معلم هم مطرح است. اگر ما می‌خوایم یک جامعه رو به رشد داشته باشیم، جامعه پیشرفته‌ای داشته باشیم، جامعه توسعه یافته‌ای داشته باشیم، باید قشر معلم هم مورد توجه و عنایت خاصی قرار بگیرد. زیرا کسی که قرار است علم را در جامعه منتشر و یا آموزش بدهد معلم است. بعد مورد توجه قرار بگیرد توجه بیشتری به این قشر بشود. اگر معلم خوب نداشته باشیم، پزشک خوب هم نخواهیم داشت. اگر معلم خوب نداشته باشیم، مهندس متخصص خوب و متعهد خوب هم نخواهیم داشت. اگر معلمان خوبی نداشته باشیم، زندان‌های ما پر از زندانیان و مجرمین خواهد شد. و اعتیاط در جامعه توسعه و گسترش پیدا می کند. اگر معلمان خوبی نداشته باشیم رو معلمان کار نکنیم مورد توجه قرار ندیم این قشر معلمی را برای آرام کردن های ورزشی از پولیس های شورش باید استفاده کرد سر کوچه و خیابان پولیس های باتون به دست با ایستاده باشند آمار ازدواج باید آمار طلاق ببخشید آمار طلاق باید بالا برود همش به این. یک معلم در مدرسه مربی در خانه که مادر باشد همه به اینها برمی گردد. احترام به بزرگترها باید در خواب ببینیم اگر معلمان خوب بارسته فرهیخته تربیت شده نداشته بشیم یکی از مشاورین یک صحبتی داره بسیار جالب میگه تو یک استانی بودم به من مراجعه کردم و سوال کردن از من که اگر ما میخواهیم یک شهرستان و یک استان توسعیافته و پیشرفته داشته باشیم باید چه بکنیم؟ شما به من مشاوره بده من عرض کردم خدمت اونها که من شنیدم که قرار است پتروشیمی به استان شما بیاد شما پتروشیمی داشته باشید سنت پتروشیمی داشته باشید گفتم بله پیگیر اون هستیم نمایندگانم دنبال کردند قرار است حالا بیاید در آینده من به آنها گفتم که شما بیخیال این پتروشیمی بشوید نمیخواید این چیز نیاز ندارید و این ما برای پیشرفت شما مناسب نیست برای توسعه استان شما نمیشه که ما خیلی کار کردیم خیلی هزینه کردیم نمایندگان چانه زنی کردن تلاش‌ها شده حالا مگه میشه ما ولش بکنیم بی خیالش باشیم دنبال نکنیم پیگیری نکنیم گفتم نه شما برای آن چند صد میلیارد تومان هزینه کردید چند صد میلیارد تومان هزینه کردید حالا 2 صد میلیارد سومن هزینه کردید اون بودجه رو بگیرید اون بودجه شو بگیرید بذارید تو بانک حقوق و رو سه برابر بکنید ولی به شرطی که همینطور هم حقوق معلمان رو سبرابر نکنید معلمان آزمونی داشته باشند یعنی از یک فیلتری رد, بخ... رد بشوند و گذینش گز... هایی رد بشن روانشناختی آزمون روانشناختی بدهند که بیان قابلیت معلم شدن دارند یا ندارند شرط دوم این که معلم فقط شغل معلمی داشته باشد و شغل دوم نداشته باشد چه ام از تاکسی و کرای یا شغل های, کلاس های خصوصی و شغل دیگر هیچ شغل دیگری نداشته باشد معلم باید قبل از رفتن به کلاس مطالعه کامل داشته باشد مسلط بر درسش باشد و با انرژی و عدم خستگی و با نشاط وارد کلاس بشود تا درس که یاد مزیاد میگیرد با نشاط یاد بگیره خاطری خوبی از اون درس یاد گرفتن نه از اون درس زده بشه با خستگی معلم که ببینه با شرط و شرط سوم، این هست که معلمان دوره یادگیری داشته باشن به یه معلوماتی که دارن بسنده نکنی دوره هم برای آنها بزنن در اون دوره هم شرکت بکنن برای که آپدیت بشوند بروز بشوند مطالب جدید هم یاد بگیرند و از امکانات روز برای آموزش استفاده بکنن با این شرط و شروط، سه برابر هم بیشتر بکنید 20 سال بعد شما نسلی خواهید داشت که خودکفا هستند به توسعه هستند متعهد هستند متخصص هستند و قطعاً پیشرفت خواهید کرد اما اگر امروز پتروشیمی وارد استان شما شود این صنعت و شما رو معلماتون هم کار نکرده به همین منوال که هست پیش بروید مباد اولین پتروشیمی از خارج وارد می شود گازش از فلان شهر به شهر استان شما میاد مهندسان از یا از آلمان و ژاپن و یا خیلی تلاش بکنند از تهران به نزد شهر شما برای شما خواهد بود و معلوم نیست اصلا استفاده مش باشن شهر شما باشن بومی باشن شما نیروی بومی داشته باشید نداشته باشید از شهرای دیگر بیان برای اون کارخونه‌ی پتروشیمی شما اما محصولات این پتروشیمی هم با تریلی به جاهای دیگر میرود و آن چیزی که برای شما میماند آلودگی و بیماری و مریضی هست دیگر خود دانید یک صحبت دیگر و یک نکته دیگر در رابطه با نکات پیرامون معلم در با خود سیستم آموزشی هست که متاسفانه سیستم آموزشی ما هم به روز نیست حداقل نسبت به دنیا و جهانی که در آن زندگی می کنیم دنیای پیشرفته ای که در کنار ما هست عقب هستیم حتی نسبت به کشورهای آسیایی مثل ژاپن هم سیستم آموزشی ما خیلی عقب هست یکی از اندیشمندان میگه که ما در مدرسه اینو و آموزش رو این میدونیم که بچه ها مشمشون بنویسند بچه ها وقتی از بیدار میشن صورتشون رو با صابون میشویند به بزرگترشون احترام بذارند بچه خوبی باشند سر و صدا نکنند چه نباشند سلام بکنن موقعی کسی رو می بینن اینو ما بچه ها فقط یاد دادیم. اما زندگی کردن و مهارت های زندگی کردن فقط این هاست میگه از نفس کشیدن تا سفر کردن نیاز به آموزش دارد کل زندگی انسان نیاز به آموزش دارد و باید وارد دبستانها ها شد اگر میخواید جامعه بیدانی که در حال پیشرفت است یا نیست ببینید تو دبستانهاشون چه خبر هست اگر تو املا و انشا دارند و ماسونه دارند و این مسائلی که ارث کرده است پس بدانید که پیشرفتی در کار نیست. اما اگر در دبستان آن مدرسه روی دانش آموزان کار می کنند که پرسشگر، ذهن پرسشگر، خلاق داشته باشند، صبر و به بچه ها آموزش می دهند، و تمرین می دهند، نظم پذیری را، فعالیت های جمعی، مشارکت های جمعی، کارهای گروهی را آموزش می دهند، جامعه رو به پیشرفت هست که توسعه یافته خواهند داشت. نفس کشیدن هم نیاز به میگه آموزش داره دور کردن اضطراب از خود به دست آوردن اعتماد به نفس و سلامت روحی و روانی کاملا نیاز به آموزش دارد اما ما وقتی به سن میانسالی و پیری رسیدیم حالا یاد میگیم که یوگایی هست و اونجا آموزش چگونه نفس کشیدن میدهند و فلان و بهمان سفر کردن هم به همین صورت یکی از چیزهایی که میگه نیاز به آموزش داره نگاه کردن هست درست نگاه کردن از آموزگاران برتر نگاه در دنیا میگه اگر دست در قرن 19 هم جان راسکین میگه که اگر دست من بود درس تراهی را در همه مدارس دنیا اجباری میکردم تا دانش آموزان قبل از اینکه به نگاههای سرسری عادت بکنند نگاههای عمیق را بیاموزند نگاههای درست را بیاموزند خوب نگاه کردن، خوب شنیدن، خوب سخن گفتن ابزار و امکاناتی است که پروردگار در اختیار ما گذاشته تا ما کسب علم کنیم و توسعه پیدا بکنیم. ان السمع والبصر والفؤاد كُلُّ اولئك كان عنهم مسئولا؟ سمع وبصر وفؤاد. چگونه محابره محاوره کردن و گفتگوی گویی درست؟ چگونه برخورده برخورد با یک مخالف؟ و کسی که نظر مخالف با ما دارد، تعامل و برخورد با او آداب گفتگو کردن، آداب سخن گفتن، آداب شنیدن. وقت خوب بشنویم، خوب سعی کنیم حرف طرف مقابل را خوب بشنویم، گوش بدیم، صبر داشته باشیم، تو حرفش نپریم. حرفش رو قطع نکنیم که هم اون نمیتواند آن گونه مطلب که میخواهد ارائه بکند، هم ما ناقص میفهمیم. اگر خوب گوش کردیم، ساکت شدیم، بعد متوجه نشدیم، حالا سوال بکنیم. اما هنوز طرف صحبت میکنه و ما هی پریم تو حرفش، خودمون هم متوجه نمی‌شیم، اونم نمی‌ذاریم که درست اینا آموزش میخواد. میریم هزاران کیلومتر، ۵ چهارزار کیلومتر به شما این طرف اون طرف میگردیم برگشتیم میگم یک،, یک صفحه دو صفحه در رابطه با اون سفرتون بنویسید خلاصه میگه نمیتونم. پس چی نگاه کردی؟ چی دیدی اونجا چه چی چیزهایی دیدی نگاه چشم بینا نداشتیم نگاه خوب نداشتیم. توجه نکردیم. حتما باید طراح بشیم که حالا مجبور بشیم خوب و سایر رو ببینیم. اینکه که ما سعی کنیم به این مسائل، همه این مسائل، مسائل روز، یادگیری مسائل روز داشته باشیم در کنار علم و تدریس و آموزش دادن سعی کنیم اخلاق رو هم نهادینه بکنیم در نسل جدید نسل جدید بسیار نیاز به اخلاق و مسائل اخلاقی دارد دور شده از مسائل اخلاقی، پرت شده از مسائل اخلاقی و به شدت به سمت مادیات، و پول و اقتصاد هم مغمه شده است و لا غیر چیز دیگری نیست آیات اولی که نازل شد بر رسول الله صلی و وسلم در کنار علم و دانش و اهمیت آن بحث اخلاق داشت و غیر از بحث اخلاق دو بحث دیگری هم هست در سوره مزمل و مدثر مورد توجه و تأکید قرار گرفته که انشالله در خود به آینده به آن خواهیم پرداخته بارک الله لیولکم بالقرآن والسنه و نفعنی و ایاکم بما فیهما من الآیات والحکمه اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لیولکم ولیوالدی و لوالدیکم المسلمین فاستغفروه انه جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین